افسون افسانه به نام خدا سلام عزیزان افسانه ها، قصه ها و داستانا که معرف هویت و تاریخ و فرهنگ یک ملت های هر کشور میتونه مهر تعییدی بر اصالت اون کشور باشه. به همین دلیل که تا حد زیادی میشه در دل هر افسانه ردی از هویت تاریخی و فرهنگی اون کشور رو دید. افسانه ای رو که میخوام براتون بگم میداس دست طلا نام داره که از افسانه های مشهور کشور یونانه مرزشته های دور در کشور یونان پادشاهی زندگی میکرد به نام میداس که از مال و مکنت و دولت چیزی کم نداشت همه پادشاه میداس و به ادالت و شجاعت و درایت میشناختن و مملکتش در عدل و داد بود میداس خانواده خوبی هم داشت زن و فرزندانی که با عشق کنارش زندگی میکردن و روزگار میگذروندن اما از اونجایی که هیچ انسانی کامل نیست می داسم نقطه نقط داشت که از چشم نزدیکانش دور نبود. کلونیوس، بله سربرم. از دارائی من در خزانه خبرداری میدانی چه اندازه طلا و سکه در خزانه موجود است؟ بله سربرم. برم. طبق گفته فاستوس خزانه دار با تدبیر و درایت و درندیشی شما خزانه پرسته که با شمشای تلاسته. تادبیقی که میتوان به تمام مردم یونان سکه و شمش داد و همه را از ما و ثروت بهرمند کافی نیست کافی نیست چرا سراغ وقتی خزانه پر از تلاس دیگر واهمه نداریم نه از قحطی نه از جنگ هرچند با دلاوری و تدبیر شما هیچ دشمنی جرأت نمی کند حتی به نزدیکی های مرز یونان بیاید <laughs> با این فاینسا وقتی مملکت در صلح و آرامش است همین مقدار دارایی هم برای اداره امور مملکت کافی است میدانی نقطه ضعف تو چیست کولونیوس؟ نه سر همیشه به داشته هایت راضی هستی اینکه دلت نمیخواهد بیشتر از آن چه داری داشته باشی این که از فکر رو اندیشت برای به در آوردن دارایی های بیشتر کمک نمیگیری حتما همینطور است سر برم. اما من درست بر عکس تو فکر میکنم کولونیوس من نمیتوانم به اندازه تو از این مقدار سکه و شمشه تلایی که در خزانه هست خوشحال باشم یعنی نه تنها خوشحال نیستم بلکه اندوهگین و دلمردم به همین دلیل هم به دنبال راهی هستم تا بتوانم بدون جنگ و خونریزی تلاهای خزانه را چندین برابر کنم بیشک با درایتی که شما دارید تحقق این آرزو به زودی امکان پذیر اثرورم به یاد نمی آورم شما چیزی را خاصه باشید و به آن نرسیده باشید همین زودی راه رسیدن به ثروت بیکران رو خواهم یافت کولونیوس خواهی دید. بله دوستان حتما شما هم تا الان متوجه شدیم که پادشاه شاه می داز در این حالی که با درایت و شجا بود تا حد زیادی تمکار بود و همینم اونا به فکر واداشت تا هر طور شده تلاهای خزانه رو چند برابر کنه. به همین دلیلم به معبد میره و در محضر خدای آرزوها می ایسته و با تمام وجود از خداوند آرزوها میخواد تا بهش این قدرت رو بده که به هر چیزی دست میزنه طلا بشه. میداس روزها و هفتهها به معبد میره و آرزو میکنه اما آرزوش برآورده نمیشه تا اینکه یه روز امروز پیکی از آسیای صغیر به دربار آمد و خبر داد که سربازان ما در آن سخت محتاج آب و خوراکند کلونیوس این موضوع قابل پیش بینی بود سرباز بله قابل پیش بینی بود اما تو به عنوان وزیر هرگز چون این حقیقتی را برای من بازگو نکردی چرا این دلیل که به تدبیر و دوراندیشی شما اطمینان داشتم سربرم میدانستم آسیای صغیر و آنچه در آن وادی اتفاق می افتد از اندیشه شما دور نخواهد. اما با تمام تدبیر و دوراندیشی این حقیقت تلخ بر ما ارز شد و سربازانمان بی آب و ماندند آن هم در شرایطی که فرسنگ ها با ما فاصله دارند ما با تمام قوا برای کمک رسانی به سربازانمان در آسیای صغیر آمدیم از تو تعجب می کنم. تو چقدر ساده و نادانی؟ حرف بدی زدم سردن حرف بد از اندیشه ناقص ناشی می شود تا وقتی که در اندیشه ناقص تو شرایط موجود رضایت بخش و عالی به نظر میرسد رسد نمی توانی حرف های پسند و منطقی بزنی یا تحلیل درستی از موقعیت داشته باشی ولی, ولی شرایط موجود خیلی هم نگران کننده نیست سرور. از نظر تو شرایط نگران کننده چه است؟ اینکه توسط دشمنان ما محاصره شده باشیم، اینکه توان قدرت دفاعی ضعیفی داشته باشیم و اینکه سوال چه چیزی باعث می شود که دشمنان ما به خودشان اجازه دهند تا دست به محاصره ما بزنند؟ چه چیزی باعث می شود که قدرت و توان دفاعی ما ضعیف شود؟ خب خیلی چیز هم. مثلا مثلا اینکه مثلا اینکه ما از خودمان ضعف نشان دهیم. معمولا ضعف انسان از چه می شود؟ از ترس. ترس چه زمانی به سراغ ما می آید زمانی که باور کنیم دشمن از ما قوی تر است چه زمانی دشمن از ما قوی تر است زمانی که سربازان بیشتر و تجهیزات نظامی بیشتر داشته باشم بگو بدانم کلونیوس آماده کردن سپاهی بزرگم را با تجهیزات نظامی به چه نیاز دارد به درایت پادشاهی چون شما <تصحي> نه کلونیوس نه حتی پادشاه بادرایتی چون من هم با دست و خزانه خالی نمیتواند به سربازانش انگیزه دهد تا در میدان نبرد قبی قدرتمند ظاهر شوند و دشمن را در هم بکوبند دادت باشد این پول است که قدرت میآورد خزانه هایم باشد از تلاست که قدرت آورد. اگر خدای آرزوها آرزویم را میشنید آن را برابرده میکردم وقت به آن میز که دست میزدم تلا میشد یا به این صندلی که <تصفيق> <تصفيق> خوردم این روز. بله سربرم. اندروش بله. می‌بینم. سربرم ای ای این انسان دلی انسان دلی. این انسان عزز. عززی تلوش تلوش شد. <تصفيق> بله انسان دلی تلوش شد سربرم تلوش شد. <تصفيق> انسان دلی تلوش شد. این ساداری با قدرت درست من تلوش شد. سرکن سرکن سرکن. بعد این گلدان هم دست بزنم ببینم تلاش شدن این در یک اتفاق بود یا یا یک یک یک یک کلونیوس با چشم خودت بیا و ببین که این گلدان هم تلا شد <تصفيق> این شکفتنگیز از سر بره. با باید با با با با با با با تابلوهای این قصر را هم تلا کنم <تصفيق> خدای آرزوها آرزوی مرابره برده کرد کنانیوس ببین به هر چه دست میزنم تلا میشود. <تصفيق> میز سندلی پرده فرش تابلو همه تلا شدند از تو ممنونم مقداری از از تو ممنونم میداس پادشاه یونان با قدرت جادوییش حالا تبدیل به میداس دست طلا شده بود او به هر چیزی که دست میزد طلا می, می شدد خزانه ی کشور یونان پر شده بود از شمش و سکه های طلا اما اینها چیزی نبود که میداس را راضی کنه او همچنان به دنبال کسب ثروت بیشتر بود سرورم، سرورم چه خبر شده کلونیوس؟ جمعی از سران روم همکنون به دربار آمدند و قصد دارند با شما دیدار کنند. <تصفيق> متاسفم کلونیوس من برای این دید و بازدید های مزهک وقتی ندارم <تصفيق> ولی سر و رمان ها اگر نمیبینی لباسم رو عوض کردم و قصد دارم از این دربار بیرون برم آره می‌بینم ولی ولی به گمانم بهتر از ابتدا به دیدار سران روم بروید بعد از دربار خارج چمه من فرصتی برای دیدار با هیچ مقامی ندارم کلونیوس دلم نمیخواهد وقتم را با دیدارهای بی سر انجام تلف کنم دارم از این دربار بیرون بروم و تا میتوانم به گل و سنگ و درخ دست بزنم تا تلا شوند. ببین لباسهای من مرا ببین کلونیوس ببین چقدر درخشان و چشم نوازند لباسهای من همه هستند. در تمام روم و ایران و یونان و چین و ماچین و اندلس، کدام باید را سراغ داری که چنین لباس های فاخری به تن کند و به هرچه دست میزند تلا شود حالا تو میخواهی من این فرصت تلایی را از دست بدهم و به خاطر چند موضوع پیش پا افتاده با مردان رومی دیدار کنم نه نه کلونیوز نه من راهی دشت رو بیابانم می کاری کنم که تمام سنگ ها و های یونان تبدیل به تلا ش حس به اینکه اینجا بیستی و به من نگاه کنی برو برای سفری تلایی مهاییه شو <تصفيق> میداس و کلونیوس همراه تعداد زیادی از درباریان از دربار بیرون میرند و به بیابانی بزرگ میرسند. میداس از اسب پیاده میشه و شروع میکنه به دست زدن به ریک های بیابان. ریک ها و سنگها و صخرهها یکی یکی طلا میشن. حالا تمامی خزانه های یونان پر از طلا بودن. اما پادشاه یونان به این مقدار از طلاقانه نبود و همچنان دنبال راهی میگشت تا بتونه طلای بیشتری رو به خزانه یونان اضافه کنه. سر برم،, سر برم این همه نگرانی و تشویش برای چیست؟ ما الان شرایط خیلی خوبی داریم در مقایسه با دیگر امپراتوران جهان قدرت مالی بهتری داریم. هیچ کشوری به اندازه ما اندوخته که طلا نده؟ باش خاموش باش. اما ما خودمان را با هر کشوری مقایسه کنیم یونان قدرت می‌خواهد، عظمت می‌خواهد، شکوه و جلال میخواهد و همه اینها فقط و فقط با ثروت به دست می‌آید، نه هیچ چیز دیگه. در حال حاضر ما هم قدرت داریم و هم عظمت شکوه. اما من من بیشتر از شکوه و عظمت یونان نگران شما هستم. چند روز است که غذای خوب نخورده اید. چند روز است که به قدر کافی نخوابیدین. حتی چند روز است که همسر و فرزندانتان را ندیده اید و اینها سلامت که اتون را به خطر بیان سلامت بازد. من وقتی به خطر میفتد که دستم خالی باشد دستم کی خالی میشود وقتی خزانه خالی باشد پس با من بحث نکن بگجال خوب فکر کنم ببینم دیگر چه چیزهایی را میتوانم تبدیل به تلا کنم مرا ببخشید سرورم ولی ولی تمام درختان یونان تلا شدند ریگها شنها ماسه ها هم تلا شدند سرورم نگاهی به این دربار بیاندازید برق این همه تلا میکند چش سرعت مرا ببخشید سرورم ولی ولی شما باید به این مقدار ثروت و دارای خانه باشم خانه باشم <تصح> هرکس کلن می‌کنوس هرکس تالا برای من به شیرینی این انگورهای سیاه است که مثل دانه های یاقوت می‌درخشند بیا بیا از این انگورها بخور کلن نیوز. تو هم ده ده خدای من این انگورها هم تبدیل به طلا شد یادم نفوذ نباید به اینها درش بزنم بیا بیا, بیا. یا این انگور تلایی برای تا سپاس گذارم سرگاه میدانی کار لیوز فکر میکنم تو به من حسادت میکنی از اینکه من چون این قدرتی دارم ناراحتی. بر هیچ سربازی روانی نیست که به حال فرمان روای خیش قبطه بخورد و از قدرت فرمان روایش ناراحت باشد سربرم. قدرت شما عزت و افتخار من و مردم یونان است نگرانی من فقط حال و روز شماست میترسم روزی برست که که این دست های برایتان درد سرساز شود. تانه من نباش حالا بیا با هم دیگر به خزانه برویم دلم میخواهد از نزدیک آن همه طلا را ببینم میخواهم برق خیره کننده آن همه تلا تو را هم مسکور کند کولونیوس در این دنیا هیچ چیز به اندازه شمردن سکه های تلا برای من لذت بخش نیست برویم کولونیوس <تصح> برویم بله دوستان ولای میداس برای جمعآوری طلا هر روز بیشتر و بیشتر میشد حالا میداس تبدیل به مردی منزوی و تنها شده بود که فکر تبدیل کردن اشیا و وسایل به طلا یک لحظه هم دست دسترش سرش بر نمی داشت. او برای اینکه طلای بیشتری به دست بیاورد هر روز از دربار بیرون می‌رفت و گاهی سفرش چند روز طول می‌کشید او حتی برای خوردن غذا هم فرصت کافی نداشت و این چیزی بود که کلونیوسو به وحشت انداخته بود سرورم، همه یه درباریان متوجه شدند که بدن شما ضعیف شده. روا نیست تا این اندازه جسم خود را خسته کنید. شوق اندوختن طلای بیشتر خواب و خوراک را از شما گرفته. دستور دادن برای شما مرغ بریان و بوغلمون کباب شده بیاورند باید از این خوراکی ها و این میوه های بخورید و جان بگیرید تا توانی برای فرمان روایی بر یونان داشته باشید. در تمام عمرم وزیری چونتا نداشتم کلونیوس مهربان، فتاکار و صادق با این حال من کار خودم را انجام میدم اگر بگویم همکرون دلم میخواهد از دربار بیرون بروم و به زمین و زمان دست بزنم و خروار خروار تلا به دربار بیاورم باور میکنی؟ آری باور میکنم ولی پادشاه میدارس به همان اندازه که به ثروت نیاز دارد به سلامتی هم نیاز دارند تا بتوانند از این همه ثروت بهره ببرند از شما تقاضا دارم امروز به قدر کافی غذا بخورید تا رنگ به رخصارتان برگردد و قدرت به بازوهایتان فقط به خاطر تو کلویس سپاس گذارم سردارم البته اطلاف میکنم خیلی گرسنه بوی این غذاها هر آدمی را مست میکنند خب از کجا شروع کنم؟ میخوانم اون مرغ بریان را درست بخورم گفارها که وجود سردارم جب مرغ به ها ای این, ای این مرغم تلا شد مهم نیست در برم آهسته بوغلمون رو بردارید خودم هم دارن این فکر رو دارم عجب بوغلمون و... ای هم ای هم شد مگر می شود چرا نمی شود قرار نیست دستان تلایی من فقط ریگ و سنگ و سخری را تلا کند قرار از هرچه دست بزنم تلا شود خب، خب بهتر از راه دیگری برای غذا خوردن پیدا کنیم راهی کلونیوس نکند انتظار داریم چون بوزینه های مرغ های بریان و بوغلمان های کباب شده را به دهان بگیرم Muhy... چه چنین، چنین جسارتی نکردم، سرفارم، فکر کردم، فکر کردم شاید اگر... اگر چه؟ اگر سرورم سرورم من با کمال میل آمادم تا تو با دسای خودم مرغ بریان رو در دهان دهان چه میگوی اگر من کودکی نتوانم که توانم غذا خوردن نداشته باشم تو بخوای در دهان من غذا بگذاری این چه حرفی سرورم من فقط مکالونیوز کولونیوز کولان... نتوانم غذا بخورم نه اینطور نیست سرورم حتما راهی برای خوردن و آشا میدمتون وجود داره. سر با احتیاط اون جام رو بردار. ها، درسته. جام. و هنگ حل شد. دیش. این. ای ای نه. ای تنگل های نوک. هی، دین سروس صفال حمد حل شدن کلونی یوسف میبینی؟ میبینی. ولی سرورم میبینه. اگر میبینی فکری بکون. سرورت گرس نه است تش نه است فکری بکن تا به کام من به زودی نزد طبیبانه دربار میروم و از آنها میخواهم برای رحایی از این مشکل چاره بینده اشن سرورم روی داشت کنن نیوز برو برای من از این مخواسه برگرد اتاعت میشود سرورم آره. گذشت به اینکه میداس پادشاه یونان بتونه آب و غذای بخوره از دست طبیبان دربار هم کاری ساخته نبود میداس هر روز نهیفتر و می میشد. قدرت تلا کردن اشیا حالا برای او یک کابوس وحشتناک شده بود اما ماجرا به همینجا ختم نمیشه. تا اینکه ماجرای تلختری برای میداس رقم میخوره کلونیوس <cat ending> خداگه من سلام بر دوشیزه ما دختر پادشاه یونان سلام بر کلونیوس وزیر دربار یونان شما اینجا چه می‌کنید دوشیزه ما چند روز است از حال پدرم بیخبرم من و مادر دلتنگ این مادرم را نمیدانم اما من بیش از این نتوانستم دوریشان را تاب بیاورم آمدم تا پدر را ببینم جناب پادشاه کمی کمی کسالت دارند کسالت دارند؟ چه شده کلونی؟ چیزی نیست دوشیزه ما. جناب پادشاه قدری خسند همین از لحن کلام شما بوی خوبی به مشام نمی رسد همکنون باید به دیدن ایشان برفم با،, با،, با باور کنید چیز مهمی نیست اگر چیز مهمی نیست چرا دستانت میلرزد و زبانت الکند شده خب به این دلیل است که انتظار دیدن شما رو نتاشتم دوشیزه ما. بسیار خب باور می کنم حال می گذاری به دیدار پدر بروم یا نه به گمانم به گمانم سرورم خواب باشن دوشیزه مهم نیست منتظر می تا بیدار شد اما ما مم مم ممکن است وقتی بیدار شدن؟ عصبانی شوند <تصفح> اگر عصبانی شدند من گناهت را بر عهده می گیرم سرورم این روزها قدری قدری حقیقت را به من بگو کولونیوس چه بلایی سر پدرم آمده گفتنش ساده نیست دوشی زه ما خدای من پس موضوع جدیتر از این هاست نکند به خاطر دستای تلاییش به درد سر افتاده نکند دشمنان ایشان ولایی سرشان است. وای خدای من سرخم خدای من آه. اجازه دهید میدانستم میدانستم اتفاقی برای پدرم افتاده که چند است به دیدار من و مالا دوشیزه سرک کنید دوشیزه خواهی کنید دوشیزه ش... دو ش... دو منم اما پدر اما دخترم یا در آقوشم نه نه نه نه نه سار برمی نه اگه اما اما اما تلاشت اما تلاشت دخترم تلاشت گوشیز اما دخترم تفتیلی مجزمی گوشیز اما بله عزیزان پادشاه میدوست که فراموش کرده بود دستهایی طلایی داره با در آغوش گرفتن دختر شما اونو تبدیل به مجسمه ای طلایی میکنه مجسمه‌ای که حالا دیدنش برای پادشاه عذاب آور شده حال و روز میداس هر روز وخیم‌تر میشه همسرش تصمیم میگیره از اون جدا بشه جسمش نحیف میشه و دربار در سکوتی دهشتبار فرو میره سرور مجلس سنا برای تصویب قانونی جدید به مهر شما نیاز دارند آه. من قادر نیستم قدم از قدم بردارم کلونیوس کدام مهر کدام قانون تصویب قانون برای کشوری که باید جایی نادبان چون من دارد به چه میاردش کلونیوز این حرف رو نزنید سرورم شما به زودی سلامتیتان را به دست خواهید آورد فقط نباید امیدتان را از دست بدهید شبونه کلونیوز برای از ترس جرعت نبی به چیزی دست بزنم باید همیشه مراقب باشم دستانم به چیزی برخورد نکند از وقتی دخترم امارا به مجسمی تلایی تبدیل کردم در خواب و میداری کابوس می این زندگی است چرا اینگونه به من زرزدی کلانیوست دلت میخواهد ملامتم کنی دلت میخواهد زبان به ملامتم باز کنی دلت میخواهد بر سرم فریاد بکشی بگویی حق من است که گونه عذاب بکشم و چون این کابوس هایی ببینم نه سر برم من قصده چون این جسارتی ندارم علی من خودم را ملامت میکنم از خودم یله دارم کلونی. اگر راهی وجود داشت که دستان شما دستانی تلایی شوند حتما راهی هم برای رهایی از این خاصیت وجود دارد سفرم چرایی؟ من با تذر و التماس از خدای آرزوها خواستم این قدرت را به من ارزانی کند رها شدن از این قدرت منحوز غیر نا امید نشوید سرفرم خدای آرزوها همیشه و در همه حال آرزوی پندگان را میشنوند نه گولانیوس نه انتا آخر عمر باید به خاطر این قدرت منحوس از آب بکشم هر میدانم چیزی هم به پایان عمرم این حرف را نزنید سرفرم از خدای آرزوها میخواهیم هم وارسایه شما بر سر یونان مستدام باشد با این حال نظر من این است که باز هم خاسته هایتان را از خدای آرزوها طلب کنید خدای آرزوها؟ درست هست است. چه چیزی درست است سر بره؟ من دوباره به سراغ خدای آرزوها میروم التماسش میکنم تجرم میکنم زاری میکنم از اون میخواهم این قدرت منحوس خانمان برنداز را از من پس بگیرد هاری هاری یاری راهش همین هست کلونیوس. roash a <gasps> میداس که از دستان طلایش خسته شده بود با تروی آفتاب همراه تعدادی از درباریان به معبد میره و با تضرع و زاری از خدای آرزوها درخواست میکنه که این قدرت رو ازش بگیره و اونو به حالت قبل برگردونه اما تضرع و زاری اون به درگاه خدای آرزوها بی جواب میمونه و میداس شپنگام با ناامیدی به دربار برمیگرده عسا دیگر نیو نه نهایی برای زندگی کردن دارم نه امیدی برای مملکت داری نه طبانی برای فرمان بیش از اینما خزانه پر از سکه های طلا و مجسمه های تلایی اما یز خود را تا به این انداز ضعیف و آ توان میدادم سرم. خود را مرمت نکنید به زودی همه چیز درست می شود.گو با این حال زار شما همچنان پادشاه یونانین جناب میدادست. نباید این گونه سخن بگوید چرا خوددا های آرزو ها با مکنه خدای ها از من رو برگردان شده کلانی نه سر برم خدایان هرگز از بندگان رو برگردان نمیشه بنده کلانی هست بله سر برم وقتی در معبد بودم یادم آمد چه چیزی به یادتون رو برگردان نمیشه خدای ها که سخن نمیگویند شاید با دادن نشانی خواستن شما را متوجه حقیقتی کنند بگویید وقتی در معبد بودین چه چیزی را به خاطر آوردید من نکنم خدای آرز است دادن نشانی به من بین داشت شما سخت ناامید شدین سربرم. با این حال استدعا دارم به یاد بیاورید که وقتی در معبد بودین در خیالتان چه گذشت؟ وقتی آنجا بودم و درگاه خدای آرزوها رو می کردم نا یهان یاد رودخانه ای افتادم که موفق نشدم آن را به تلا تبدیل کده رودخانه؟ ای در شمال یونان برف و سرما نتوانستیم آنجا برویم. در معبد مدام صدای شرشو آب آن رودخانه به گوشم می ما میکردم که کنار آن رودخانه هم. حتی احساس می کردم دستانم را با آبش شستشو دادم دیدی کلونیوس دیدی که در این نشانه هیچ حقیقتی نبود کلونیوس چرا عقب ماندی خدا بهتر از این نمیشه و سربرم چه چیزی بهتر از این نمیشه؟ هیچ نشانه ای بهتر از این نیست از <Surum> از راهی که خدا یا رزوها برای خلاص شدن از قدرت دستانتان به شما نشان دادش سر برم به گمانم. بگمانم گمانم شما باید به آن رودخانه بروید و دستانتان را در آب آن رودخانه بشوید یاوه نگو کلا نیست این یک نشانه است، یک نشانه از طرف خدایا رزو ها تمام میکن به آن رود بروید و دستستانتان را در آ نیاز چرا نمی, نمی توانید سربرم شما مخت ترین فرم دوای جهان اقزارار خیلی وقت است که از من این حرف نظرید سر برم شک ندارم که شما می توانید به آنجا بروید من هم همراه شما میاد میدانی از اینجا تو روزخانه چقدر است؟ چگونه با این تن نیف آنجا بروم نگران این همه مسافت نباشید اگر شده با تم روان به آنجا بروید باید با شتاب دستان خود را در آب آن رودخانه بشویید استدعا می کنم سرورم شک ندارم که این کار قدرت طلای کردن اجسام از شما را دور می کند خواهش می کنم سرورم خواهش می کنم کلونیوس همچنان به پادشاه میداس اصرار میکنه که برای از بین بردن قدرت طلای دستانش به رودخانه شمال یونان بره میداس که دیگه رمقی براش نمونده ابتدا مخالفت میکنه و در نهایت میپذیره و شبانه به طرف شمال یونان حرکت میکند تا اینکه بعد از چند شبانه روز در حالی که رودخانه در محاصره برف و کولاک بود به رودخانه میرسد سربرم شما حالتون خوب است سربرم سربرم از آس پیاده شد ما به رودخانه خانه رسیدیم ما این همه راه نیومد چه مامورتون ربی سلام جان بو گزید مبارک باشین اسات میکنم پیاده شوید سربرم خوب است ببینید آن روض خانه جاری و مبوقت صدگش را میشه نبید؟ میشه نکنید سرورم فاصلهای بین شما و خوشبختی آرامش فقط چند گام است اراده کنید و این چند گام را به خاطر خودتان و به خاطر بقای یونان بردارید خوب است خوب است چیزی نمانده به فروت خاله پرسید آفرین سرورم فقط یک گام مانده دیدت سرورم دیدت هم نسید اکنون دستایتا را به آب بزنید بار دیگر از خدای رزو آبه خواهید که آن قدپت جادوری از دستانتان خارج کند دستان را به آب بزنم از سرمان فقط برای چند لحظه سرورم استدعا می تو تمامی خانمین قدرت را از دست دادن بگیری و سلامتی و آرامشان را بمنبار کردی. حالا من گرامی جویا برای او از دکور نمی‌روم بر روزگار گذاشتم. خوب است سردار. خوب است. خوب است. حالا نیاز به دیگر هم وقتی من در ما پولایی کنیم اتاعت می شود به برایم اتاعت می شود همکنون می دارم هم تخت روان را بیا تو سوار سبار تخت روان را بیا برید کان میداس بعد از شستن دستانش در رودخانه همراه سایر درباریان به دربار برمیگرده اما بعد از اونم میداس به هر چیزی که دست میزد طلا میشد. میداس حالا به شدت نحیف و لاغر شده بود حتی به سختی نفس میکشید تا اینکه یه روز در دربار اتفاق عجیبی می‌افتاد سربرم سر همه طبیبان یونان جمع شده و قصد دارن مدوایتان کنند بیفاید <تصفح> هستی کنانیوست ببینین در برق خیره کننده ای دارد همین یونان تبدیل به کشور تلایش اما که پایده اندازه در این کشور هست قمان دو به دربار سای افکه راز دست داده هیچ سرورم اگر ای این باشه ندارد قمان. نه سرورم نه بله سرورم بخواهم روی سندلی بشید کدام <تصال> سندلی هم سندلی که اولین چیزی بود که با دستان من به طلاب بسیار خوب سر بره آن سندلی رو از آن گوشه بیاورید اطاعت سر بره خوبست بفرمایی سر بره سندلی رو آوردن دستانتان را به سندلی بگیرید و بلند شوید سرورم سرورم چشمانتان را پاس کنید سرورم این سندلی چوبی شد چه میگویی کلون کنید این سندلی چوبی شد آهای انگول گلدان آبی آورید. انگول دادن آبی آورید. سرفرام دستون رو به این گلدان بزنید. سرفرام انگول دادن. انگول دادن. انگول دادن بودو ریشات بیمنی سرفرام. آرزو آرزوی من هیچ ابادی نیست. آرزوی سرفرام هیچ. دکتر اما <متحدث> بچو بین، اصرار سر. من قراره پولید. اصرار. برای سربرم قضا بیا بریز. قضا بیا بریز. قضا بیا بریز. در فرما. میفرمایید. میل کنید. میل کنید. چشتم، چشتم. چشتم. قضا بیا بریز. بیا نگفتم بباید دا میچوید سرورم. نگفتم همه چیز درست می شود. مجسمی دوشیزه ما را آوردن سرن بلن شوید بلن شوید بیان دست بزنید بلن شوید دست بزنید, دست بزنید. پدر شما حالتان خوب است؟ بله بله خوب دوش زیما برگشت برگشت ولی ولی شما در محوطه دربار بودید که به دیدنتان آمدن نه نه ده دوش زیما اطمان اشتباه کردید اجازه بدهید سرورم قضا میل کنند مال سرورم خوب شده دوش زیما میبینید حالشان خوب شده <تصفح> از اون روز به بعد تونست مثل یه آدم عادی زندگی کنه اون حالا متوجه شده بود که حرص و تمه تا چه اندازه میتونه زندگی رو دچار بحران و درگیری کنه چند روز بعد میداست به شکرانه از دست دادن اون قدرت طلایی دستور میده همه طلاهای تلاهای خزانه رو بین مردم یونان تقسیم کنن و با این کار بر حرص و تمه خودش غلبه میکنه بله عزیزان اینم از افسانه میداس دست که از افسانه های آموزنده و مشهور کشور یونانه میداس دست تنظیم برای رادیو سهیلا خدادادی، راوی فریبا متخصص بازیگران ایوب آقاخانی، محمد رضا قلمبر، شهین دختر نجفزاده محمد یگانه. کارگردان بهرام سروری نژاد، افکتور نازنین حسنپور صدابردار مجید آینه تهیه کننده زهرا عبدالله زاده افثانه ها رنگی از زندگی هم. افسون زندگیتون دلنشین و مانا تا افسانهای دیگر بدرود